آقا دکتر مولایی، هم بنده هم کانون و هم آقا و در دانشگاه در تدریس میکنن و آمشب باید زد آن جمع کنیم ارز کنم که از اون چه در جلسه گدشته صحبت شده بود باید عرض کنم که اون مقاله دکتر امید سالا رو راجب مرداست من نگاه کردم در شماره دوم سال دوم مجله ایران نامه بله بله خب الحمدلله الحمد من تازه رفتم رفرانس رو بیارم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوب خیلی خوب دیگه از این بهتر نمیشود شد آقای بله این بسیار مقاله درجی است خدمت خانمان بدین آینو بله اشتراکی بخونی که یا این این مقاله ونی من که خوندم حالا من خوندم بریم این چند مقاله در و خیلی خوبه برای این کار همین می‌شه حالا به هر حال خیلی خوشحال شدم، برای اینکه خودم تو دستام گشتم، این رو پیدا نکردم اصلی که که که بیارم، ولی خب دیگه ندارم. آقای مرتضایی بیاد دیگه شون خدا خیلی بده آقایی تو مرتضایی بعد خب شروع کنیم اگه اجازه فرمائین و خود شما بیا آقای نو یه اقتی اینجا از کجا؟ از آن پس برآمد از ایران خروش حدید آمد از هر سوی جنگ و جوش سیاه گشت رخشند روز سپی گسستند پیوند با جمشی برو تینه شد فره ایزدی به کجی گرایید و نابخردی پدید آمد از هر سوی خسروی کی نامجوی به هر پهلوی سفه کرده و جنگ را ساخته دل از متر جمشید پرداخته یکایک یک بیام از ایران سفه سوی تازیان برگرفتند را شنیدند کنجا یکی مهتر است پر از حول شاه اجدها پیکر است پر از سواران ایران همه شاهجوی نهادند یکسر به زهاک رو به شاهی بر او آفرین خواندند برا شاه ایران زمین خواندند مرآن اژدهافش بیامد چو باز به ایران زمین تاج بر سر نهاد ز ایران و از تازیان لشگری گزین کرد گردان هر کشوری سوی تخت جمشید بن روی، چو انگشتری کرد گیتی برون. چو جمشید را وقت شد کند رو، به تنگندر آمد سفقدار نو. برفت و بدودا تخت و کلا، بزرگی و دیهیم و گنج و سپا. نهان گشت و گیتی بر او شد سیاه سپردشت به زفا تخت و کلا. چو صد سالشان در جهان کس ندی بر او نام شاهی بر نام شاهی و او ناپدید. در او نام شاهی اون ناپدی. صدام سال روزی به دریای چین پدید آمدن شاه نابافتین. نهان بود چند از بد اجدها نیامد به فرجام هم زور آ. شزه ها کشاور ناگه به چنگ، یکایک ندادش سخن را درنگ به ارش سراسر بدون نیم کرد جهان را از او پاک پربین کرد شد تخت شاهی یون دستگاه زمان روبودش چو بیجاده کا از او بیش بر تخت شاهی که بود بدون رنج بردن چه گذشته بر او سالیان هفتت قدید آوریده همه نیک و بد چه باید همی زندگانی دراز چوگیتی نخواهد گشادند را. <تصفيق> همی, پروراند... همی پروراند با شهد و نوش جزاوی نرمت نیارد به گوش. یکا یک که گسترد مر نخواهد نمودن به بد نیست چه؟ بدو شاد باشی و نازی بدو. همه راز دل را گشایی بدوی یکی بازی برون آورد به دل تندر از درد خون آورد گفت دنیا زنیست اشبده و دلستان ولی با کس همی به سر نبرد اخت شوقتی آبستنی که این همه فرزند زاد و کشت دیگر که چشم دارد از مهر مادری بعد این ملاحظه فرمودید که اولا چند نکته است این نکته ها رو من یه چیزی بگم بعد یکم به بده تا اولیش این است که میگه فرذه یزدی از اون راه اجازه فرذه یزدی حرف زد من دوباره نمیخوام تجدید مطلب کنم در اون با اگر کسانی هستند که ندیدن این مطلب رو میتونن به کتاب‌های فرون پوردابود تمام می‌کنن به فرهنگ ایران و باستانش. یا به هر حال دو کتابی که توی یکی از این دو تا است، یکی خرمسدنامه است که فرهنگ ایران و باستان مقاله مفصلی درباره فره ایزادی است اونجا ببینید. قدیم چون سلطنت رو امر الهی می‌دونستان. و فکر میکردن که پادشاه باید مورد تایید ذات حق باشه بنابراین میگفتن که فره ایزدی مثل همون نور حالهی که دور سر هست یه چنین چیزی تصور میکردن که این هست و اگر کسی مورد تایید نباشه این فره ایزدی از او جدا میشه و برای تجسمش به صورت مرب یا به صورت گوسفند مجسمش کردن بوچ و بعد دیگه پادشاهی از آن او نیست اما دقیقاً این فرعی ایزدی چیزی بوده که مشروعیت میاده به شاه و حاکم در هر حال، در هر تاریخی، در هر روزی در دنیا وقتی مشروعیتشو از دست داد دیر یا زود این کاملاً این نشون میده میگه برگشتم مردم از جمشید برگشتم و هر طرفیه گردن کسی پیدا شد و شلوخ شد و همه رفتن دنبال چیزی و بعدم شنیدم که کسی پیدا شد در عربستان. ببینین این استوره که از صفاتشی که از خواستش این که چجور تطبیق میشه با, با حواده است یه اجده ها پر از هول مرد هولاد اونجا هست و رفتن با سلام و سلبات آقا رو ازشان آوردن آقا به قول هدایت تو توک تو دلش میگفتش که هنی پدری ازتون بسیدونم که یا قدوس بکشن و آقای زنهایی تو دلش میگو بله حالا بین تا, تا بعد خدمتتون برسیم و نکته دیگر این که میگه جمشید وقتی که چیزش تنگ شد بر اون زندگی همه بر اون تنگ شد و مثل حلقه انگشتری گرفت ناچار تاج و تخت و بزرگی رو لا گذاشت و رفت نه اونجا که جنگ کنه و کشته بشه لا برای اینکه اگر کشته میشد هم شعن بهتری داشت هم زندگی راحتتری داشت به هر حال متواری شد نکته دیگه که از تا عصر مال کاملاً چیز داره کاملاً مستاق داره این است که میگه هیچ جا قبولش نمی‌خوره. این بعد از اینکه اونجا از اونجا از اونجا از اونجا, اونجا، مرتباً جا عوض کنه و تا گیر نکنه. میگه بالاخره بعد در دریای چین گیرش می‌بینی از کجا به کجا گیرش آوردن و بعدشان آوردن و بعدم معتلش نکردن در های قدیمی هست که به عره میانش بدون دونیم کرد اگه این روش یعنی از کمر به عره قطع کرده. در این نسخه که بهترین نسخه است در حقیقت و نسخه تحصیل شده اصول نسخه خوبه هست به عرهش سراسر بدون کرد بله و اون وقت چقدر این شبیه میشه به سرگدشت زکریه‌های پیغمبر که پیگاه هست که اینا از هم زکریه‌ها رو میگن که از دست خومش در رفت و رفت و بعد یه اینو اینا عوامون ناست درست کردن که به جای اینکه بگه ای خدا من در یاب گفت درخت من در یاب و رفت و هم آمد اون توی درخت و یه گوشه قباش بیرون مون. آمدن دیدن مردم مات متحییر ابلیس آمد و به صورت نجاری و عرد و سر رو توی, توی سنت نجارها هستش که عرد و سر ابلیس اختراع کرده از یه سر بدن از یه در این عرد رو ابلیس اختراع کرد آورد و برای همین که زکریه رو تو درخت دونیمش کردن و یه کسی به سه باموزه‌ایم می‌گفت می‌گفتش که زکری‌های پیغمبرت‌ها گفت آخ، هره رسیدی فرق‌ساش گفت آخ، کتاب رسید از حضرت رب‌العزده که اگر آخه دیگه بگی از پیغمبری مذهب بعد، یکی از دوستان ما که خب یه ذره خبیس بود می‌گفتش که حضرت یوسف و وقتی برادر شناسم تو چا. خطاب رسید به جبرئیل که برو پیشد این که برسته چاپ بیگیرش اگن نه با حالت سوخته است یه جبرئیل اومد سریع وسط را بچه رو گرفت سعی و سالم گوشت زمین این یوسف خب اون حس رو داشت و اون زیبایی رو داشت و اون جمال رو داشت و خب این جمیل و یه بل جمال اینه که خب حسنش خریدار داشت حتی حضرته هم زکری های پیغمبر پیرورد در نورای افتاده میریخ در بدبخت تا گفت بف آخ گفتن آخ رو ده افتام دیگه با هر حال حال نمیدونم که جمشیده چجوری با عره به دونیم کردن برای اینکه درخ و میشه عره... عره کش کنن دونیمش بکنن ولی او رو دیگه چجوری کردن، به چوب بستن، چکار کردن، باید بزنن تو خرک یه چیزی هست برای الوارا، اونها چیزی دارن، خرک میگن، نجارای، مسلسیس رو میمزنن تو تنگ میگزن الوارو، باید میورن به هر جهت و میگویم که کسی که اینم، این داستانم جالبی که، البته در شاهنامه نیست ولی در روایت های دیگر هست این وقتی من راجع به های دیگری شاهنامه هم حرف زدم که بهترین اینا رو یا به هر حال سلیگه خودش که مقداری گرفته رفایت های دیگری در جاهای دیگری هست که بعضیان نقل کردن از جمله رفایت های بسیار بسیار کوهن یکی چیزه یکی مجمل و تواریخ است مجمل و کتاب خیلی خیلی مختصری یعنی کل کتاب اصلا یک کلیدمن است و میاد تا دوری اسلام اینا میرسه اما اینا رو داره و بعضی جاها به کلی جداست یعنی معلوم میشه منبعش اصلا جدا یکی دیگه اون کوشنامه از کوشنامه ها داره در با بزرگ شدن فریدون اینا که اصلا مطرح مذاکره ما نیست به کلی جداست یعنی نشون میده روایت های دیگر هست در روایت های دیگری که هست میگوین که اون کسی که با ارجمش رو دونیم کرد برادرش در هر حال عبرت روزگار رو ببینید که به چه ترتیب بعد هم دوستی باز طبق معمولشون با اون حالت ای که داره دوباره چیز میکنه اون آخرش میگه خب بعد این 700 سال پادشاهی این چه فایده داشت و این دنیا و این ترتیب بر تو مهرمی رو سعی میکن تو رو میبره رو اوج و شاید آقای نوح یادش باشه این چیز رو میگه که فلک دون نواز یک چشم هست وان یکی هم به فرق سر دارد میتونه گیمو؟ من همش یادم نیست میگه که فلک چرخ فلک یک چشم داره اون یه چشمش هم فرق سرشیه فنابراین یکی رو بلند میکنه میبره بالا چشمش که میفتیم اونه خره میزنش زمین یه خره دیگه برمیداره خره جای برداره از <تص> که وقتی فلک کارش این است که به این ترتیب ارز کنم که همه رو که هر جا بادشاهی رفته فردوسی این نکتر رو یاد کرده که از اون بیش بر تخت شاهی چه بود؟ بدان رنج بردن چه آمد نه همه در حقیقت وقتی این با فکر میکرده که این تاریخ ایران داره میسازه بعد خب در حقیقت این نامه ایست که شاهان باید دستور کل عملشو بهشون میگه آقا 700 سال این بابا بود اون هم هم جنگه گذشته برای سال سالیان 700 پدید آوریده آغارد. همه میگو بد اون همه کار کرد چه باید همی زندگانی دراست شدیدی نخواهد کشاد انتراز همی پرورانت با شهد و نوش جزابای نرمت نیارت به گوش میبره اون بالا یک ها ایک گویی که گسترد مهر نخواهد نمودن به بد نیز چه به دوشات باشی یا نازی به دوی یکی نازبازی برو آورد به دلپندر از درد خون ها آورد نتیجه نتیجه این باشین این مستی نعمت و مستی مقام و مستی قدرت رو اینا نگیره این چیز که هر روز دست یکی بوده و بسیار کسان بزرگتر از شما، خوشیدتر از شما آمدن، رفتن، شما هم پایید رخت این اصل مدرد حالا بریم سر قضیه ارز کنن که از آن پس برای آمد ایران خروش حدید آمد از هر سوی جنگ و جوش سیاه گشت رخشند روز سفید گسستند قیوند با جمع میشید برای اون تیره شد فره ی ایزدید چه از دست به کجی گرایید و نابخردی که بیتی هست که بندی گام کردم که مال فردوسیست مال فردوسی نیست و الان به درستی هم هنوز یادم نیست که مال کیه. یک جامعه که اشاره کردم که این آمده بیت مثل بیتای فردوسیست میگه چو تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش آقل بکن وقتی سررشته اون و از کف آدم در میره اون وقت هر کاری که میکنه درست نتیجه عکس میده فره ایزدی ازش گسسته مشروعیت چه از دست داده دست و هر اقدامی که میزنه به ذره اشتامه برای اون تیره شد فره ایزدی به کجی گرایید و نابخردی نابخردی آدم از عملش میبینن دیگه میبینن کاری که میکنه عبلهانه حالا این چه جور میشه همون آدم پدید آمد از هر صوبی خسرویی یکی نام به هر پهلوی خسرو خوب به معنی ولی لقب پادشاهان ساسانی است همطوری که کی کی یعنی شاه در اوستایی کوی کی یعنی شاهان که کی لقب واچن کیانی کی قواد کی؟ کی و کی خسرو و کی باووس و انزولینا کی آرش و کی پشینو منظورن خسرو لقب پادشاهان ساسانیست و به معنی دارنده نام و آوازه نیکو نام به معنی شغره دلوتی هاوس روانگ ها، یعنی دارنده نام و شغره این معنی کلمه خسروه است خس به معنی شاهند کار حدید آمد از هر سوی خسروهی یکی نامجویی به هر پهلوی اینجا پهلاو رو به معنی قبیله گرفته در حیرت یعنی از هر موشه از هر گروهی اما اصل کلمه پهلاو در فارسی باستان و در عوستایی است پرثاوه و مثل تی اچ انگیزی پرثاوه در زبونهای باستانی لام نیست ریس به جای لام این پرثاوه در پهلاوی شده پلهاو چون سه هم به هم بدل میشه مثل میترا میترا نیستره شده مهر چیستره شده چه همینجور هم پرسه شده هاو لغب عشبانیانه یعنی صورت دیگر از پارت و بعد به قاعده قلب همونجور که قلف و قفل و قلف و نخر و نرخ و امثال اینا که گروف یک عوض میشن کفت دارده فردوسی بارها در شاهنامه همینجورن پلهاو شده پهلاو پس اصلا پهلاو یعنی منصور به قبیله قبایل اشکانی. که اینا ایل بودن و سوارکار بودن و معمولاً ایلیاتی هاست و مخترم دیگه پهلاوان هنو سوارکار هنو جنگاور زندگی سخت دارن آبیده میشن این هست که پهلاوان از این ساخته شده با الیفانون نسبت یعنی منصور به قبیله‌ی پهله که معروف رو جنگ است. پهله پارت. اما اینجا من یه، چه سرجنبونی، کسی که سر بلند کرده قدید آمد از هر سوی خسروبی، یکی نامجوی به هر پهلبی، سپه کرده بود کردن باز, باز معنی تازه ای از کردن یعنی مجهز کردن تجهیز، فراهم آوردن سفه کرده و جنگ را ساخته ساختن اینجا یعنی آماده شدن ساخته شدن یعنی آماده شدن سفه کرده یعنی سفاه تیگه کرده، فراهم کرده، جمع کرده و جنگ را برای جنگ هم آماده شده بسیجشون کرده، سلاح داده آمادهشون کرده برای اینکه برمید سفه کرده و جنگ را ساخته دل از مهر جمچید پرداخته عرض کردم مثل اینکه پرداختن با از درست معنی ضد پرداختن است با به پرداختن به یعنی مشغول شدن یک کاری پرداختن از یعنی فارغ شدن از اون کار یه معنی پرداختن خالی کردنه دل از مهر جمشید پرداخته یعنی درشونم از میر جمشید خالی کرد. برای مثال هر دو تا اینا این بیت حافظ چون چهانمون اینا که توزین آدم نیمونه کم میمونه ولی بیت حافظ چرا توی اون ای که شمشیر جفا ور سر ما آخته ای دشمن از دوست ندانسته و نشن ای میگه من دل از تو با غیر با به منی بست من دل از مهر تو با غیر نپرداختم یعنی از تو فراغت پیدا نکردم به دیگری هم مشغول نشدم. من دل از مهر تو با غیر نپرداختم نازنین تو دل از ما به که پرداختی هم هم از هم بر اینجا طرز استعمال شد نظیر همین است شاغل شدن مشغول بودن و اینا با مشکول بودن ب و مشغول بودن از همین طور اینا سعدی قصیدهی داره هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل به صورتی ندهد است لا یعفل از آن که من به تأمل در اون گرفتارم هزار هیف بران آن دست بگذرت خافه چه چه چه اعلام درد مرا ای طبیب می نکنی، مگر تو نیز برو مونده ای در این مشکل هزار کشتی با در این دریا فرو رود که نبینند تخت بر ساحل و دو میگه می جهانیان مهمات خیشتن مشغول مرا بر میگه تو شغل نیست از جهان شاغل از جهان شاغل یعنی از جهان فارغ جهانیان به مهمات خویشتن مشغول ما به روی تو شغلیست از جهان شاغل که من به حسن تو ماهی ندیدم تاله که من به قدر تو سربی ندیدم ماهی هر حال سپه کرده و جنگ را ساخته دل از مهر جمشید پرداخته یکا یک بیامد آمد از ایران سپاه سوی تازیان بر تاله همه رو اون ارز هر گوشو رافت دادن بالی قرمز هم را بردم <تصفيق> که با سلام و سلوات مردم هم بیاد شنیدن یکی مهتر است پر از هول شاه هجده ها پیکر است سواران ایران همه شاهجوش نهادند یک سر زنها رو. از او برگشت بودن ولی منلکت بی زماندار و بی بیشوار و بی شاخت نمی شد کسی میخواستن تو جای او بشن آمدم ارز کردم اون دفعه که سوار توی این حیزده این درست مطابق اصطلاح یعنی تلفز عوام ناس تیرون میگن سوار شد این درست یعنی اینا پدر و پدر جور از،, از صلاف به خلاف میرسه و اینا زبون از مادرشون و پدرشون یاد می‌گیرن یا تو بازار یاد می‌گیرن همونی که گذشتگان داشتن وقتی از ما علمان می‌کته شروع کنیم به زایه کردن زبین تواران ایران همه شاهجوی نهادن یک سر بزرد توی به شاهی بر او آفرین خانده ورا شاهی ایران زمین خاند مران اجده فش فش عادات تشبیه خصبند تشبیه مران اجده ها فش فکردار باد ببخش مران اجده ها فش بی آمد چو بعد بنده سواده امشب امشن نعی بردن مران ها فش بی آمد چو بعد به با ایران زمین تاج بر سر نهان از ایران و از تازیان لشکری گزین کرد گردان و هر کشتری سوی تخت جمشید بن رو چون انگشتری کرد دی دی یا یه انگشتری انگوشتری و انگوشترین یاش در حقیقت جزء کلمه این انگوشتر که ما حالا میگیم چون انگشتری بلنده کوتاه شده بل اصل کلمه انگشتریه با نو زهر تابان شد چرخ چنبری چون نگین دا می جدا از حلقه انگشتری چه انگشتری کرد یعنی تنگ کرد سه حلقه انگشتار این بر اصطلاحات حتی نقالی اینا هست که معاصره اونها رو وقتی که تنگ می می‌گفتن مثل نگین انگشتر یا مثل حلقه انگوشتر او رو تنگ گرفته بودن و سخت گرفت می‌گه دنیا رو منزه انگوشتر کرد تنگ کرد سوی تخت جمشید به نهاد رو انگشتری انگوشتری کرد دیتی بر او چو جمشید را بخت شد کند به تنگ اندر آمد سپهدار نو یعنی درست آمد این به تنگ آمدن یعنی مجاور شد باهاش چون به تنگ آمدن یعنی به سطو آمدن هم هست این اون نیست اینجا یه وقتی بخت جمشید کنترل شد و سفهدار نو نزدیش اون رسید تنگا تنگ به اون رسید برفت و به دوداد تخت و کلاه بزرگی و دیم و گنج و سفاه نه نمیم, نمیم نمیم نهان گشت و گیتی و رو شد سیاه سپردش به زه تخت و کلاه این شین است شین فائلی است که تو تیرون الان مورد استعمال داره میگن رفتش گفتش دیدش امثال اینا با یادم من بچه بودم اسفانی ها وقتی ما حسن علفرون درست با همون لحجه اسفانی رفتش گفتش این کار رو کردش و ولی بعد دیدیم که نخیر این چین چیز عدبیه و تو آثار عدبی قطیبم هست تو شاهنامه سرافون نمونه بسیار معروفش در شاهنامه اونجایی که رستم وقتی تیر رو زد به چشم اسفندیار بزد تیر بر چشم اسفندیار جهان تیر شد پیش آن نامدار گرفتش پش و یال اسب سیاه زخون لل شد خاک آورد دار. گرفتش فش یال یعنی گرفتی توی ویست و رامین هم هست میگه که وقتی رفت، رفتم پیغام پیغام ویست رو میگه وقتی بردم بیش رامین ندادش پاس و با من برای شفت چنین گفت و چنین گفت و چنین گفت ندادش یعنی نداد اینجا هم سپردش به زحای کخت و کلاه یعنی سپرد به میگن مگن شین فاعلی الان در ادب فقط چین مفعولی هست گفتش یعنی به او گفت تو صد سارشن در جهان کس ندید بر او نام شاهی و او ناپدید دونید باز مسئله مهم که وقتی شاه هنوز شاهه و اون مدعی شاهی جدید یعنی گیرش نعی شاهیش چیز نداره حوام با استحقام نداره برای اینکه اسم شاهی هنوز برچم شد و برای اینکه تصبر نکنید که این مال باز افسانه است و استوره است منده خدمتون ارز بکنم که آقای شاخشوجا در دوره خاجه شیراز بسان برادر شامحمود و آمدن رو یه دستوی رو آوردن و شاشوجار رو از شیراز بیرون کرد و شاشوجار رفت و رفت در عبرخو یه <تصحیح> عبرخو جاییست که حالا کسی بخوام بگن رفت به جایی کسی سراز میگو رفت عبرخو عبرکو رفت عبرگو و از اونجا باز دو سالی نبود در شیراز و البته اون شاه محمود هم دیوانگی زیادی کرد و بدرفتاری کرد و به کلی معلوم شد که این مالی نیست برای این کار و شاه شجاع تحت حمایت وزیر بی نظیر شلازی توران شاه با لشکر جن کنه و ترتیباتو رو برگشت و عقبی بیرون کرد میشه سرکره کنش تا وقتی که کسی هست اسمی هست، و مدعی هست، این پادشاهی چیز نداره، استحقام نداره. اینم که میگه که رفتن دنبالش که معمولاً زهایی در دریای چین با گیر آوردن و رشن آوردن، دلیلش این بوده که این تا،, تا این نمیومده و کلک شکنده نمی شده، این نام شاهی و رو راست نمی شده. سال، روزی به دریا ایکین پدید آمدم شاه ناپاکین نهان بود چند از بد اجده ها نیا آمد به فرجام همزو رها اینجا رها درست معنی خودشمانی صفت رها نشد ولی گاهی رها رو فردوسی و یعنی رهایی هم میاره نیا بیزو رها یعنی از رهایی نیا میاره با. این صد سالی که میگه که جمشید متواری بود برای این دوره دیبت هم چیز ساختم داستان و ترتیبات دادم عرض کنم حضور مقدستون که قبلا منده عرض کنم یک کتابی یا کتابونه ملی پاریس هست به نام جمچید نامه به ترکی است. و چون من شنیده بودم و منبعش هم حالا میتونم بایاتون بگم در جاهای مختلف هست که کتابهایی رو اسم می‌برن که ما جز اسم ازش سر سرجان ملکم در هزاره هشتده ده خیلی زیاد نیست، سد و هفتادشتاد سوه، هشت به ایران، قبلا هم اول اقره 19 هم در هند بود و اونجا هم هند و ایران و فارسی بلد بود و اینا تاریخ ایران نوشته بعد از هشتده ده در اون تاریخ ایران اسم میگره از کتاب هایی به نام جمشیدنامه و نامه که میگوینا هست ما ندید این ها برای اولین بار یک جمشیدنامه دیدم در کتابخونه ملی پاریس عرض کردم به ترکی جغطایی و از یکی از دوستان خواهش کردم جوان خیلی زحمتکش کش دانشمندیز آقای غسین که در اونجا در, در مرسی زبان و شهره پارسی درس میده بسیار آدم خوبی است و گفتم که اگر مویثر باشه بایی که برو با اینو این رفته و خونده و برای من آورده که این کتاب چیه؟ اسمش جمچید نامه هست سرگدشتم سرگدشت اما در اواخر دوره صفحوی نبشه یعنی اون جمشید نامه اصلی که باید در اون قدیم قدید آمده باشه، او نیست. اسم همه جدیده، موطیفا همه جدیده، همه اینا جدیده و مالی نیست. شنیده بودی که جمشید یه قصه ای داشته، اون قصه رو پیدا نکرده، خودش قصه ترکیب داده بسنش. ولی به هر حال باز غنیبت این بازی خیلی اتفاق، با موقع از را رو سه شوار نفر ساخت یه پونسد بیت پیدا شد، مالا انصری با اون، احسای انصری به صورت موجزه، یه پونسد بیتش پیدا شد یه استاد پاکستانی، پروفسور محمد چفی، یک کتاب، یک کتاب فقه داشته، شروع خدی مالا قرن هفتم، کتاب این که درست کنه، صحافه جلد تیماج نرم داشته جلدی که با می‌کنه می به جای مقواد رو شد، برگ کاغذه این نه کاغذ قدیمی ظاهرا کاغذ رو نمیذاره صفحه پاک شده میذاره استاد محمد چفی میاد بهش میگه که والله این کاغذ لای این جلد بود یعنی که قدش قدیمی اینا میگاه می میکنه با میونه با کاغذ انصریه یه مقداری از با کاغذ انصریه که این یه ای کتاب وقتی این کتاب رو می نوشتن در قرن هفتم بوده این کتاب پارشو دین روز اشغال نوشتن لای جلد ولی خب havas وقتی اون پیدا شد، من دوی دارابنامه یه چهار تا خط راجب با مغز نوشته بودن و از که همه این با مغزرهایی که ساختن، اگر رو خود آلون ساختن اسم شهرت داشته و داشتن، با مغز این جمعشید دامن اما یک مقدار داستان، مال دوره چیزه، مال دوره اصطلاح متوالی بودن جمعشید وجود داره و او در مقدمه‌ی گرشاستنامه عصدی آمه و هم در چاپ‌های چاپ بروخی مثلا چا، شاهنامه در چاپ‌های خدیم شاهنامه با عنوان ملحقات شاهنامه با اینکه می‌دیدن تو گرش‌ها حتما هست شون نوشتن ملحقات اون رو دوباره هرچان چاپ کردن قصه بعد از اینه که می‌گه برای اینکه سلسله نصبی برای, برای پهلوانان داستان ایران بسازن میگه که بله جمشید وقتی که در حال در حال تباری بود و از شهر به شهر می رفت و پنهان بود و مرتب متوجه بود که نگیرنش گزارش میفته به کابل اگر اشتباه نکنه و گرشنه و خسته و تشنه و بدبخت و اینا میرسه به دمه باقی آبی میامده و از آب میزنه صورت شد فکر کنیم این باق آدم متعبین باشه در میزنه و گوی راست بوده نون آبی میخواد و اونان مهمان یاد کسی از راه میرسه بعد چیز می‌کنیم خلاصه در سرتون نده درخواه این باگ متعلق بوده به دختر بادشاه باگ و این دختر و جمشید همگهره میبینن دختر به جمشید بهر میاره بود حالا بعد از 700-900 سال بادشاهی ها هست مرم که عاشق هم دیگه میشه همه یه عواشکی ازدواج فرخوندهشون رو اعلام میتونه بعد معلوم میشه که خب راز اولا از فرده بیرون می میفته بعد دختره میگه وقتی جمشین میگه تو چی تو من شنافتی اینام که تصویری روی دیبا کشیدی و همه شهرها فرسته بودن همجورد حالا اکس ها رو با کامپیوتر مخابره میکنند یه تصویری از که بودن به همه شهرها خرسیده بودن که این آدم و عیدیدین بگیرنش و من تصویر پیش بابام دیدم و عاشق شدم خلاصه و این بود که راضی شده و کردن و بعدم پدر میفهمه و دخترم میگه من دوست دارم بلاخت و شدم حالا هر در میخواه بکن میبکن میگه که خیلی خوب من کاری نمی کنم. اما من طاقت مقامت در برابر زه هایتون ندارن و یا دوتایتون بریم یا این آقا بره از اینجا که بلاخره جمشید میره و بچه ای از اون باقی اونو که این بچه سلسله پهلوانان سیستانه و بلاخره نصلش میرسه به گرشاست و باید سام و باید رستم و الاخر برای اینکه این سلسله نسب درست بپیونده پهلوانان باستان ایران بپیوندن به جمشید این داستان مفصل مربوط به جمشید و سرگردانی و آبارگی و ازدواج و رو در مقدمه و آبارده و بعدم پسرها یکی یکی به جمشید پسری داشت به این نام عرض کنم که گورنگ هست و اصروت هست و ارز کنم که شم هست و یه دیه هستانی سلسل نسبی دارن که هست ف ارز کردن میرسه به گرشاست و از او به نریمان و از بریمان به سام و از سام به زار و از زار درستم و بعد دنبالش دیگه البته اونجا اصدی میره همون سر سرواشت گردشاست و رسطه جمچید اونجا قطعه میشه احتمالا شاید در جمچید نامای قدیمی هم یه چیزایی وجود داشته ولی خب این نسخه که هست چی در اون نیست عرض کنم که اینجا دیگه من چیزی نمی بینم برای اینکه جزیات مطالب و قبلا کنشکاوی های لغوی اینا رو کرده بودیم بی یه وقت شما رو من نگیرم او آقای سفند کجاست؟ نمی خونی آقا؟ بیا اینجا، یه دیگه اینجا، اینجا، اینجا،, اینجا. اینجا. شنگلی هست, شنگلی هست. خیلنک سواد نمیره ها. فغزول <تصفيق> محمد چفی مرد خیلی درجیه در جیه که الان یه به نامش هست. در لاهور بوده. استاد اوریانتال کالج لاهور. پسرش رو من در پاکستان بود ببند. ها <تصفيق> بر تخت شد شهریار بر او سالیان انجامن شد هزار سراسر زمانه به دو گشت باز بر آمد بر این روزگاری دراف نهان گشت کردار فرزانگان درست این لغت ها رو دونه دونه دقت کنین و این فیتا رو چومان میخواد تعمال بیشتر بخونین که حلی رو برا میخونه کردار فرزانگان گنده شد خام دیوانگان هنر خار شد جادویی از من نهان راستی آشکارا گذن شده بر بربدی دست دیوان دراز به نیکی نبودی سخن جزبرا دو پاکیزه از خانه جمعشی برون آوریدند لرزان چو چوبی که جمشید را هر دو خا... جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را چو افسر بودند ز فوتیده رویان یکی شهرناز دیگر پاکدامن به نامرنواس به ایوان زهاک بردندشان بدان اجتهافش سپردند بپروردشان از ره جادوی بیاموختشان کجی و بدخوی ندانست خود جز بداموختن جز از کشتن و قارت و توتن چنان بود که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از پخمه پهلوان خورشگر ببردی به ایوان او همی ساختی راه درمان و بکشتی و مغزش بپرداختی مرن اژدها را خرش دو پاکیده از کشور پادشاه دو مرد گرانمایهٔ پارسا یکی نامش ارمای رمایل پاکتین دیگر نام گرمایل پیشبین زنان بود که بودند روزی به هم سخون رفت، سخون رفت هر گونه از بیش و کم زبیداد در شاه و از لشکرش و از اون های بد در و از اون رعصمهای بد اندرخرش و از اندرخرش یکی گفت ما را به خالیگری بباید بر شاه رفت آوری و اون پس یکی چارهی ساختند زهر گونه اندیشه انداختند مگر زیند و تن را کریزند خون یکی را توان آوریدند بروند برفتند و حالیگری ساختن خورش خود بیاندازه بشناختم پرشخانه پادشاه جهان گرفتیم دو بیدار خرم گرفت این دو بیدار خرم نهان از اون روزبانان مردم, روزبانان مردم کشان از اون روزبانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان زنان پیش خالیگران تافتند زبالا به روی اندان پر از درد خالیگران را پر از درد پر از درد خالیگران را جگر پر از خون دو دیده پر از چینه سر همین بین همی بدان آن بدین ذکردار بیداد شاه زمین از اون دو یکی را بپرداد جز این چارینی نشنافدن برون کرد مغز سر گوزفند بیامید با مغز آن ارجمن یکی را به جند ها رو گفت نگر تا بداری سر اندر نهو نگر تا نباشی به آباد شهر تو را از جهان کوه و دشت دشت است به جای سرش زن سر بیبه ها ساختند ساختن از په اجده ها. از این گونه هر ماهیان سی جوان از ایشان همی یافتندی روان چو گرد آمدی مرد از ایشان دویست برانستان که نشناختندی که کیست پرشگر به دیشان بزی چند و میش سپردی و سهرانهادیش پیش کد از اون تخمه کنون کرد از اون تخمه دارد مینج هضاات ناید به دل برش یا پس اوین زحها وارین خو شنان بود که چون می میش آرزو زمردان ج جنگ... همین مختصر بعدم هم خواب دیدن زه که البته می‌گینید دورانی ولی بعدش هم سرگزاشت فریدونه بیشتر سرگزاشت فریدونه یه قسمت سرگزاشت جمچیده، یه قسمت سرگزاشت فریدون و این هزار ساله‌ی زه رو جز همون چند بیتی که نهان گشت کردار فرزانگان و عنر خواهر شد جادی ارجمند و اینا مطلب دیگری نمیگه یکه روزگار بالونه‌ای بود و روزگار بدی بود، و احتمالاً شاید شاید اینا همه شایده اینا دوره های بسیار بسیار قدیم شاید تسلط یه قومی نزیر قوم بابل و آشور قوم سامی برای یه مدت خیلی دراز در ایران متبلبر شده در وجود اجده هاست متبلبر شده در وجود زخان و حال ارز که گه هزار شد و کردار فرزانگان چه شد و چه شد و دو پاکیزه از خانه جمع میشید برون آوری در اندرزان چون بید اگر دقت بفرمایید اینجا در معت نوشتید که جمع شید راحت و خواهر بودند حالا الان ارز میکنم هشت، هشت، هشت، هشت، هشت، در دوازت، درست مطب همینه دردغوزنت و نسخه است، شیش هفتاش چند چندتاش هم خواهری بنده عرض کرده بودم اگر خاطرتون باشید دل من با اینکه من تخصصی در این ندارم و نمیدونم اصطور شناسی مقایسه یو رو علمشون نه علمه چی ندارم از جمله او داری دل من گواهی میده که خواهر درسته دلیلش اینه که جمع اصلا یعنی آدم دقلو جمع یعنی دوغلو و جمل و جمع در فرانسی بناید بچه است. در بیرجند میگن جمل در کرمان میگن جمعلو ای نه قبل هم کردم که دوقلو اصلا نداریم این کلمه دوغلوه دو و لو بعد ما فارسی زبونا ترکی هم هست ما پارسی زبان فکر کردیم که این دوست و قلو باید به, به تقلید از او سه قلو و چهار و هم ساختیم <تصفيق> ولی دو قلو یعنی تو هم حالا میخواد دو تا باشیم میخواد سه تا باشیم میخواد پنج تو باشی. در ویدا نوشته شده است در عوستان نیستی مثلا در ویدا آمده است که جمشید باید دختر به دنیا آمده خوهر و دختر مرده بود برای اینکه مادرش به رفتار درستی با خدایان نکرده بود این این اشت مرده به دنیا دختر و مادر تو سر ازداد و ناراحت شد و رفتش میشه آخوندای اون روزگار که خب آیا نمیشه علیه یه کاری بکنن، چه بکنن، نا گفتن که چرا اگر پسر قبول بکنه که اولین پشری باشه که بمیره این همین هست در فرمال در داستان های شاهنامان هست که در دوران جمچیر پیری و بیماری و مرگ نبوده اگر یادتون باشه گفتیم مخصصلا در عوسته آمده این مطلب گفتن در ودام میگن اگر حاضر باشه که در کشور ظلمت در کشور تاریکی در کشور بعد از مرگ فرمون روایی بکنه به عنوان نخستتین بشری که به دیار نیستی میره اگر حاضر باشه بره ما این دختر رو زنده بکنیم. و جمشید این قبول می‌تونه با اون دختر زنده می‌شه است که اون چه در سر بودشتی جمشید هست و اسم برده شده خواهر دختر و چون جم یعنی دو غلوفه، فکر این که این یعنی دوتا هست اون چه به نظر ضعیف می‌هد البته بعض ایناس خواهرم از دو دختر بودن برای اینکه فکر کردن که اون خوهر خیلی خوب موکمی با جمشید نداره بهتره که دختر باشه که بگم که دخترش گرفتید به آمادش بشه ولی مطلب نیم و قصده باید هست نیم. و باز عرض مثل که کردم که دو تا دختری که حالا جمشید به خودش 700 سالش بوده بیکاره بعدم زهایت برش را اینا رو دوتو دو دو دختر در آورده هزار سال هم تشرفستان بودن فریدون که میاد، اولین کاری که میکنه میره سراغ این دو مجلله حاله، اینا رو میاره و میگیره و این ظاهرا اشاره است به روزگار مادر تباری و اینکه که مشروعیت و قدرت حجرانی از زن سرچشمه میگرفته و کسی که اون زن شاه، اون زن مربوط به خاندان سلطنزی در اختیار داشته در حقیقت مرکز قدرت و سرچشمه قدرت رو در دست داشته این علت اینکه فریدون هم زههاک هم همین جور تا میاد اول این کار میکنه بعدم فریدون تا میاد این کاره میکنه ظاهرا شاید این باشه دو پاکیزه از خانه جمشید برون آویدن لرزان چون دید که جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را تو افسر بودند آرزو کنم که اینجا خواهر رو از یک و دو و و چهار و پنج و شیش نسخه هفت نسخه هشت نسخه در یه نسخه این پاک کردن متن مطابق یک و دو و و چهار و 5 پنج نسخه هست. متن ولی حتما دکر خالوی که دنبال این کار بوده مسئله دختر و رو روشن بیده میدونسته شاید بعدم توی آزشتش به نگیست که جمشید هر دو خواهر بودن سر بانون را چه افسر بودن زد پوشید رویان یکی شهرناز دیگر پاک به به نامرنواز این دوتا را فریدون برای به شبستان خودش و هر تا از فریدون بچه دار میشن دو پسر سلم و تور از یک دختر و یک پسر دیگر ایراج از دختر دیگر و داستانش که مربوط دوره فریدونی و هر حال این که میگه پوشیده رو هم در ذهن خدمت شما بگم اولا که در روزگار فردوسی که خب زنها جاب داشتن که به جای خود محفوظ اما مرحوم پورداود من یادمه که این مسئله مطرح بود سر کلاس میفرمیدن که شاهزادگان و اشخاص جاسنگین و متعین اینا معمولا در منظر و مرآن نمی اومدن خودشونه مردم، خانوما به خصوص نشون نمی‌دادن و در پرده بودن و این پرده نه از برای این بود که نمی‌رم این, این فلسفه‌ای که حالا واسه‌اش درست کردن نبود ولی برای رعایت احترام و برای کسی هرزگی نکنه یا با دیگری و هر حال این پوشیده رو که میگه چیز تاریخی داره یعنی اون روزگار هم اینا پوشیدگی روی علل دیگری داشتن. زفوشیده رویان یکی شهرناز دگر پاکت آمند به نواز، به ایوان زهاد بردندشان به دان اجرافش سپردندشان به پروردشان از راه جاغویی بیاموخشان کجی و بدخویی ندانست خود جز بداموختن جز از کشتن و غارت و سوختن کار گیه نمیدونست که همون که میدونست بعد می‌گه که برای داروی فساتش، دو هر شب دو تا مرز جوان رو میآوردن در ایوان زهات و بکشتی و مغزش بپرداختی، یعنی خالی می‌کرد بران اون اجده‌ها را خورستاختی یه مغز برای این، یه برای اون و کردم که در این داستان مرداست که حالا بعدم مطالعه خواهید پرمود اینجا تمام تیکه هایی که من از حفظ یه مختصری گفتم اینجا از عوستا آورده اجده ها آمد به درگاه کی نمیدونم تو شد که چقدر اسب و چی و چی و چی قربانی بکنه برای اینکه دنیا رو از ساکینش تویی بکنه قربانی او مقبول نفتاد و قبولش نکرده این است که اینکه اینجا تو شاهنامه اشاره شده که میخواست دنیا رو از مردم توی. و ابلیس این این حیلات انگیخت برای اینکه در بر حقیقت نسل مردم رو از بین ببره. دلیل اینکه مرد مرد جوان از دو تا آورد. و تیرا که دیگه بالاخره می‌راستن یه روزی دیگه امیهی نبود اونی که نسل رو باید حفظ کنه جوانان بودن و به این ترتیب جوانان یک چیزی از بین میرن بعد میگه که دو مرد گرانمایه پاکیزه ارمایل و کرمایل ارز کنن که با هم نشسته بودن و ارز که ارتقاط میکردن و ناراحت نزد یادگریای شاه گفت که ما بهترست میبریم به آشوازی خالیگر یعنی آشوازی به خالیگری بریم پیش شاه یکی گفت ما را خالیگری باید بر شاه رفت آوری آوری یعنی آری صورت دیگری هست که آری بله یکی گفت ما را خالیگری باید بر شاه رفت آوری و زن پسیفی چاری ساختنم زهرگونه هنیچند دادم آن. مگر پیدا تردیده بیه یعنی یه الان مگر رو به صورت قید تردید به کار نمبریم الان قید استثنان هست دون همه آمدن مگر حسین قید استثنان هست ولی در چیز در شاهنامه حتی در حافظ و امثال اینا مگر به صورت قید تردید پرابون به کار میره. مگر زیند و تن را که ریزند خون یکی را توان آجنین شاید بهتون یه نفر نجات کن و ساختند. رفتن و خالیگری ساختن رفتن آشپزی یاد گرفتن خورش خود بی اندازه بشناختند ولی یعنی بلد نبودن آشپزی رفتن آشپزی یاد گرفتن انواع خورش را شناختند خورشخانه پادشاه جهان گرفتند و بدار خرانها حالا ملاحظه می‌فرمایید که داستان فعل و فائل در شاهنامه خیلی ایرانی رای فاعل پایل فاعل اگه زیرو باشه به خصوص فعل مش مطابقه کنه دیگه حسن آمد، حسن، حسین، سقی آمدند. میگه خورشخانه خانه جهان گرفت این دو بیدار خوردن. حالا اینجوری میگیم که خیلی کیش از فاعل اومده؟ خیلی خوبه. دو بیته تو دستن رستم سهراب میگه سواران ترکان تنی هشت بدان دشت نخچیرگه برگذشت فعل مفرد چلی؟ آره فعل مفرد بعد پی دیدند در مرزار بگشتند گرده لر جویبار فعل بعدش جمع اینست که بنده در اون کتاب که حالا خوش که مثل که به نظرم داره چاپ میشه رساله دوتوری بنده صحب که در شعر فارسی چاپ شده بود اصلا قرار چاپ به شرخانم فرمیدن مثل این که چاپ شده یا چاپ میشه به هرامی صورت اونجا بحث مفصلی من در این باب کردم و نمونه های متعدد از این مورد رو آوردم در مورد مطابقه فیل و ما در فارسی و جای این هست که تحقیل خیلی گستردهی بشه یکی سالی بیمیست اینکار درست اینکار خورش خانه پا خورش یعنی خوراک دیگه یعنی غذا یعنی خورش خانه پاچه آجهان گرفت گرفتین دو بیدار خرم نهان نهان یعنی نهاد چه آمد به نزدیک خون زشین روان اندر آبیفتن از آن روزبانان روزبان به معنی به معنی معمولین قذب و معمولین ظالم و معمولین توقیف و موقع جلاد و آدم های شکنجه و بیناره میدونم از آن روزبانان مردم کشان یکی دیگه از چیزای، مختصاب شانامه متعابه صفت و موصوفه که در فارسی ما نداریم میگیم مرد خوب مردان خوب وقتی موصوف جمع بشه صفت جمع نشه در شانامه خیلی هست از آن روزبانان مردم کشان یعنی مردمکش مردم کش البته این قاعده استثناء هایی داره ولی حالا وقتی این پاریست وقتاً بره می‌چه از آن روزبانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان زنان یعنی با کتک پیش خالوگران تاختند این الف و نون فائلی برای حالته یعنی در حالی که اینا رو می‌زدن دو تا فیلپو تو هم باشه شو این صورت میرا ملحوسوهرام میگه که خاندان خاندان جوانی هم دزدی پرتک خوردک, خوردک زمانه رهزن قاطف اسماعیلیه که پیر خاندان به طنز وامن گفت این در حالی که میخندید این حرف این الف و نون حالات فاعلی داره ولی یکی از موارد استعمالش اینه زنان پیش خالی گران تاختن زبالا به رود اندراندا شون می زمین به صورت پر از درد خالیگران رارجگر آدمای خوبی بودن دیگه پر از خون دوده پر از کینه سر همین جنگری این به دان آن بدین سکردار بیداد شاه زمین بالاخره ناچار از آن دو یکی را بپرداختن پرداختن تا نمیدانم یه قن کشن بهشک میداختن چه میکردن نمی‌دونم. و هر حال یک چ پشت شده بود از آن دو یکی را به پرداختن، پرداختن، و آن یک کشتند حالا میگن کارش تمام میکردند جز این چاره نیست ای نیز نشتاکنند برون کرد مغز سر گروسفند، بیا آمیخت باز دوباره فعل مفرد ملیز میکنید برون کرد مغز سر گروسفند، بیا آمیخت با مغز آن نه خیلی, خیلی دم در جاهایی برامیخته سمینه اون یکی را به جان داد زنها رفت گفت نگر تا بداری اندر نهو گفت مواظب باش که درست نکن جایی نگر تا نباشی به آباد چهر خراج جهان کوه دشت است به جای سر اشتان سر بیبه خورش ساختند از خیه ها از این گونه مر ماهیان سی جوان از هم یافتند رو هم سی نفر رو هر ماه می که گرد آمدی مرد از ایشان دویست برانسان که نشناختندی که کیست خورشگر به دیشان بزی چند و میش سپردی و سهران آزیشکی اون کرده از آن تخم دارد نجاب، تذابات، ناو، یاد دل برش یا که کرده آبادی به دلشون یادشه همی دلشون نمی آدن کرده خیلی ..ه بعد با هنشون بد رفتار داشت. همه جا. همه جا باشون رفتار بد داشتن ایران هم باشون رفتار بد داشته ولی میون همه جایی که رفتار بد داشتن اون که کمتر از همه رفتار بد داشته باز خود ایران اینو خودشون تو شرایع شرایع الاسلام ما میخونیم دانشکده حق راجب خرید و فروش کتاب تجارت بعد نوشته بود که خرید و فروش با زوال آهات آهات با این نوعه حوض زویل آهات یعنی کسانی که دوچار آفت هستند مثل،, مثل دوزان مثل. بیماری های واگیر آدم های اینجوری میگه معامله کردن با اکرات و زبل آهات مکروهه کرد خواستی نامو کن برحال پنون کرد از آن تخمه دارد نژاد که ناید آباد به دل بحش آه پس آه آین زه که وارون خوی راجب وارمند که اون دفعه به تفسیل گفتم چونان بود که چون می بودی چهار جوی مطلب به مردان جنگی یکی خواستی، بکشتی که با دید برخواستی. تو اسیر شیطان شدی، تو علیدت برد شده، میکشتش، چرا برای این دختر خوشتیم داشته؟ کجا بر دختری خوب روی و پردن در اون، پا توی گفته بود، پرستنده کردیش، گرد میشه خویش میکشت، دخترش رو هندش اونجا به خدمتداری دردش خودش نگاه میداشت، نرسم چهی بود نو یونیکی خوب یه کمی حالا نفس کشید دودی‌ها برن cigar نشه شما سال تاب سربرش گذان در ایوان شاهی دیر دیرباز دیریاز به خواهندرون بود با ارنباز چنان دید که از کاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان دو یکی کهتران که در میان به بالای سرو و به فر تیان وغای سر و به پر کیان و رفتن شاهوار به چنگندرون غرزه گابسا دمان پیش ذهاک رفتی به جنگ زدی بر سرش غرزه گابرنگ یکایک همین گرد که تر ز سر تا به پایش کشیدی دواب بدون زه دو دستش ببستی چو سنگ نهادی به گردنبرش پاله هنگ همی تاختی تا دماوند کو چشان و دوان از پسند در گروه بپیچید پیچی زحاک بیدادگر به در از هول گفتی جگر یکی بانگ برزد به که لرزان شدون خانه بیستون به خورشید رویان ز جای از آن غلغل نام برکرد خدای چون این گفت زهات را ارنواز که شاها نگویی چه بودت براس که خفته به آرام در خان خیش بدین بترسیدی به از جان خیش زمین هفت کشور به فرمان توست دو و دید و مردم نگهبان توست به خورشید رویان سفهدار گفت که چون این شگفتی نماند نهار که این داستان گرز من شود تن دل از جان من ناومی. به شاه جهان گفت پس ارنواز که بر ما بیاید گشادند راز بباید. که بر ما بباید گشادند راز توانیم کردن مگر ای که ای نیست سفه بد بشادان نهان از نهات همه خواب یکی یک, یک به دیشان بگو چون این گفت با نام بر ماه که مگذارتن را ره چاره جو که را که مگذارتن را ره چاره جو ره چاره جو ره چاره جو نگین زمانه سر تخت تو جهان روشن از نام بر بخت تو تو داری جهان زیر انگشتری دد و مردم و دیب و مرغ و فرید زهر کشوری گرد کن مهتران زه اخترشناسان و اپسونگران سخون سر به مهتران را بگو هجوهش کن و راستی باز شود نگه کن که بوش تو بر دست کی زه مردم شمار ارض دیب و پرید. مردم شمار، ز مردم شما رد دیو و پری خودانسته شد چهار سال زمان به خیره متر خودانسته شد خودانسته شد چهار سال چهار سال زمان خودانسته شد چهار تا از زمان به خیره مترس پس بد بعد زمان برمنش را خوش آمد سخن که اون سر به رو افتند گند جهان از شب تیره چون پر رضا همانگه سر از کوه برزد چرا تو گفتی که بر کشور لاجورد بگستر خورشید یا غوت زر سپه بد هر که بود موبدی سخوندان و بیدار دل بخردی به کشور به نزدیک خیش آبری جگر خسته خوابی کدی. تو گفتان دیگر خشده خوابی که این چقدر دیگه مونده؟ طیلی مونده؟ طیلی مونده؟ خافی ارز کنم که قبلا اون یه چیزی اونجا بود که روبوت یه چیچی را چو بیدیاته کاخ مال اون قسمت قبلی شدن آن تخت شاهی آن دستاخ زمانه رو بودش چه بیجاده که بیجاده معنی یاغوت زرد. قبلان هم عرض کردم و عرض کردم که یاغوت اکسید علی نیومه و به تناسب اصیدهای دیگری که درش باشه رنگاش فرق میکنه از جمله یاغوت زرد که بیجاده میشه. و اینا همه خاصیت جذب چیز برن یعنی الیکتریسه ساکن وقتی دارن، جذب می‌کنن چیزا رو مثل, مثل بهترینش که عرور است این اما این مسئله‌ی زهاب و داستانشون اینا و این خواب دیدن، این کررات و مرات تکرار معروف ترینش که همه شنیدید و هیچ کس نیست نشده باشه قسط فرعون فرعون رو گفتن که بلی کسی خواهد آمد پدر تو در خواهد آورد میگه گذاشتن، بداشتن مفتش گذاشتن که هر زنی که میزاید، اگه پسر بود کلکشو بیکن اگه دختر بود رها کنن با بعد موسا به دنیا آمده دار در سرنوشت ابراهیم خلیل این همین رو آمده است که بود در اون روزگار نمرود به آدم خیلی نیرومند و قدیده بود و او همچنین خوابی که روزگارش نزدیک شده و اتفاقا حالا در شیعه که البته معتقده که آذر بطراش اموی ابراهیم بود در هم اینه که شیعه معتقده است که نسل پیغمبر اکرم و بازماندگان او این هیچ وقت در صلبه کافر نباید نیده باشه یعنی هیچ کنون از پدرهای پیغمبر تا حضرت آدم کافر نبودن بنابراین آذر اموشه و سریح قرآن هست و ازقال ابراهیم و لعبیه آذر بس که ابراهیم به پدرش آذر چنین گفت اینو شیعه تفسیر میکنه که چون امو هم میگن پدر رو میگن، عملوزش من شنیده بودن که شوهرنه نه رو میگن آقا امو. اما پدر رو، یعنی امو رو بگن پدر من نشنیده بودم، و هر صورت می‌دونستم. کرد ولی اهل سنت معتقدن که نه پدرش بوده خودترهاش بوده و بود. قبل از پیغمبر هم نسلش کافر بودن از جمله رساله نمشنن از کفر ابی طالب در علی ابن عبی طالب اصلا احل سنت معتقدن که او کافر از دنیا ما ن میگه که آذر بودتراش پدر ابراهیم در دستگاه خود نمرود کار میکرد و نطفه ابراهیم همون روزی بسته شد که قرار بود به همون ترتیب و در حالی که مثلا یک ساعت این آذر مرخصی داشتی داشته اومده خونه و رفته زنش باردار شد و بعد هم رفت و زایید و بعد بچه رو گذاشت در قاری و اونجور نمیدونم حیبون میاد چیز خوال آخر این همین مهدم در مورد حضرت عیسی باز هست که قبلاً بشارت داده شده بود که چنین کسی میاد در مورد پیغمبر اکشم هست که شب تولدشون ایوان کس را شکست دونم چه شد و چه شد و علایم ظهور بود و آشکار شد اینا همه برای همه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 اینجا با زیر نکته دیگر مجبورم ارز کنم این است که در شاید هزار تا افثانه شما پیدا بکنید که درش داستان سه برادری و معمولا این سه برادر دوتای بزرگتر خبیص و ناجنس و سه بومی خوبه و گاهی سه بومی موفق میشه مثل داستان فریدون و گاهی سه بومی از بین میره مثل داستان دیرچه ولی در هر صورت وقتی سه برادر هستن حتما برادر کوچکتره که خوبه و در حقیقت قهرمان داستانه به عنوان قهرمان انتخاب شد اینجا می میدید سه برادر اومدن و آمد و دوال پیشید یعنی با تصمه با چر هرسان سر و پای او بست و دستش هم با زه بست و پاله هنگ انداخت میگردنش رو بردش به پوه دماوند و مردم دنبالش می اینه عین ماجرایی که اتفاق افتاد و ما گرزم زد تو سرش شد میخواست با یه گرز دیگه کلککی بکنه نداش رسیده بود که وقت مرگ این هنوز نیست این است که بردنشیه فریدون بردش در بودم آوند در بندش کشید و اونجا بر بنده و در آخر زمان زور خواهد کرد اینه در و آفت بسیار خواهد وجود آورد و مردم بسیار خواهد پشت و اون وقت گرشاست. از جمله جاویدانان و الان به خواب رفته و فره زدی و که از جمشید در سه نوبت شد یک نوبت به اروسی گرشاست و از خواب بیار میشه و کشنده زن های گرشاست و از عجاب روزگار این که در کتاب گرشاست اسدی اصدی پاکشاه مرموندوا در سراسر دوری زندگی گرشاس خود زه هاک بب بگذاریم حالا قرد این است که این یه تمیز، یه برمایه است این مسئله که آدم که میخواد بیاد خبلا موجده زهورش داده میشه یا خواب دیده میشه یا مرجمان پیش دینی میکنن یا ارترشناسان یا حادثه اطفال نتران با ارسام اینا هست راجع به قصه ابراهیم اون قصه عوامانش رو اگر بخواد که تمام تفسیل داستان این رو با شاخ و برگ مفسدلی نوشته یک کتابی هست اینجا الان با آقای بیرون صحبتش بود یک کتاب دارم عربا به نام انطر انتر انتر سائری بود از شعرهای دوره جاهلی به نام انتراطب مشداد العبسی این انتراطب مشداد پهلوان هم بوده و پهلوان ملی عرباست و دختر عموی داشته به نام عبله که این امو با این انتر موافق نبوده و دائم این نقطه رو نش می از این من برده اون ور از اون من برده اون ور هزار دوستاره میان 3000 کلک میزده که دست این و انتر نرسه انتر همین رو فنسا می‌کرده سرگذشت تفصیلی انتر تقریبا دو برابر شاهنامه فردوسی است اگر بیشتر اوستانه که من دارم نسخهشو در لس‌آنجلس خوشبختان دارم 8 هر جلدی بیشتر از 500 صفحه در حوضی بسنی 700, 600, 700 صفحه در عربی ابتدای این سیرت همتر شاید در حدود 300 صفحه به تفصیل قصه پیشگوی این که ابراهیم به دنیا خواهد آمد و بعد چطور شد که به دنیا آمد و بعد چشد و بعد اون قصه ای که در قرآن آمده است که ماهودید و ستارالید و چردید و بعد رفت و شکست و اله ها خشت مورد بحث ما نیست اینا همه این یه تیمه خیلی خیلی رایجی در افثانه ها و همیشه پیش از ظهور یه قهران بزرگ چه در اسطوره و چه در هماسه و چه در تاریخ همه این تم تکرار میشه مرد اینجا هم سال میگه مونده بود عدد چهل هم از اعداد فقیق قابل ملاحظه است چل سال که مونده بود ببین چه شو نگر تا حاف سربرش یزدان چرا در ایوان شاهی شویدی یاست به خوابندرون بود با ارنواز چون دید در خواب دید به از کاخ سه جنگی پدید آمدی ناگهان پدید آمدی یعنی پدید آمد این یا که آمده آمدی اسمش یای گزارش خواب آخر ناصر پل که شما علاقه من بیده از دور هستیم این یای گزارش خوابه و مرسوم بوده هست که وقتی خواب رو تعریف می کردن که در خواب اتفاق افتاده آخر فعلاش یه دونی یه در می آوردن پردوسی جایی میگه که من دقیقی رو خواب دیدم و گفت که من شانوار سروت عدم سروتن میگه چنین دید اینجا هنوز دید قبل از خواب چنین دید یعنی خود فردوسی چنین دید گوینده یک شرط خواب که یک جام می داشتی چون گلا دقیقی جایی پدید آمدی بران جامعه داستان ها زدی به فردوسی آواز دادی که می مخور با آینه کابوسی که اینا همه یای گزرش که انواع یاهایی هم که آخر فعل در میاد اگر بخواهیم داشته باشیم که هفت تا سفشتاست صف. یکی یای زمیر دوم شخصه رفتم وقتی دوبومی یای استمراره رفتمی یعنی میرفتم گفتمی یعنی میگفتم پس زمیر دوم شخص یک یا علاقات استنگاه دو یا یه تمنی و ترجی تمنی و ترجی هر دو منی امیدوار میدنه اونتا تمنی امیده غیر ممکنیست و ترجی امیده ممکنی بگم ای کاش جوانیان برگرده این،, این تمنی نیمشه بردنی بگم ای کاش شما شانور یاد بگیرین این ترجیه نیشه شما یاد ولی عدادش شیک ادات عداد تمانی تایی آخر فعلایی که با عداد تمانی تاییم میاد در میاد این شد چند تا چهار تا. یا شرطی و است جمله شرطی مثل اگر آفتاب براید روز است جمله اول میگم شرط تو کنیم جزای شرط. و جزای شرطون از پی شرط میاد یا که آخر فعل شرط در میاد بشون یا یا شرطی یا دومش دفعه موتیعی پس شد یای یا ی زمیر یا ی تمامی و ترجیل شرطی و موتیعی شیشتا یا ی گزارش خواب هفته اگر این هفته شو هر هفته شو بخواییم تو مشکتون مشتوشین یه قضا دیداره خاجه شیراز دیدم بخواب دوش که ماهی برآمدی که از عکس روی او شبه هجران سرآمدی یای گزارش خواب تعویر رفت و یار سفر کرده میرسد ای کاش چه زود تر از در در آمدی جای تمنی ترجی یادش به خیر ساقی مسکین نواز من که از در مدام با قده و ساقه را آمدی یا ازتنگاری آنکو ترا به سنگ دلیگش ره نمون ای کاشتی که پاشت به سنگی برآمدی آمدی یا ای تمانی ترکی ازل به زور و زر ار یعنی اگر فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست آب خزر نصیبه اسکندر آمدی جای شرکی متیهی در دیگری به شیبه حافظ زدی رقم مقبول طرف شاه هنرپردر آمدی. هر هفت ها در این غزل فاجه هست غزل هفت این همه این هفت سوری هستشون چا بر ارض کنم که میگه به خواب اندرون بود با ارنواز چنان دید که از شاهنشاهان سر جنگی حدید آمدی ناگهان باز این که مفرد دو مهتر یکی کهتر اندرین به بالای سر و به فرکیان کمر بستن و رستن شاخباه به چنگن درون گرزه گافسار گافسار یعنی گافسر قالا عمللا گرزه رستم روش مین گافسر شفرون گافزار شفریدون و بررداش را دلیلش این است که بعد در داستان فریدون خواهید دید اونوارم که عممرری باشه بشه بخون و خودتون بخونیم و هر حال شماعمل که سر دستتون نگرفته دیگه که یه گابی بود نام گاب فرمایه یا گاب فرمایون که این فریدون رو بزرگ کرده بود مردمکشان زهحاک میریزن پدر فریدون رو میکشم گاب رو هم میکشن. و فیدون برای انتقام هر دو اینها آهنگران رو میخواد بعد از پیروژی به حال به نقشهی که من یک گرزی میخوام به این شکل به شکل سر گاف بیاد گاف فرمایی و این نسل اندر نسل از فیدون میرسه به سام و از سام میرسه به استان. اینه که گرزه گاف رنگ و گرزه گاف سار نمونه توربستن و رفتن شاهوار و چنگنرون گرزه گاف دمان یعنی نفستن رو پیش زحاک رفتی به جنگ زدی برستنش گرزه گاف رنگ گاف رنگ هم یعنی گاف سفت شکل گاف یکاگک یک همین گرده که تر به سال به سرطاب پایش کشیدی در بار. اون تو بردر صحبت این هست که گاهی هم یکی دو جا فریدون رو میخوام سرچ زیر آب کنن اصلا منطقه فریدون چون افسون ایزدی میدونسته و با اوانه ما وراتبی ارتباط داشته در میره از شون به سلامت میبره از قوته اون دو برادر به هر حال بودن ولی چش اشتن بابا رو ببینن یکایی همین گردی که سر به سال، سر تا به پایش کشیدی دوال همین تاختی همینه تو خوابه هم اینه یه گزارش خوابه همیتاختی تا داوند تو کشان دوان از دوان از پسندر به روح به ریچید زه ها که بیدا کرد به در ریدش از خول گفتید جمچه خوابهای نیده بود تا امروز یکی یکی بر زد به خوابندرون که لرزان شدن خانه بیستون به جستند خورشید رویان زجای از آن قلقل نام برکت خدا چون این گفزه ها که که شاه ها نگویی چه بودت براست که خفته به آرام در خانه خیش به دیمسان به ترسیدی از جان خیش چی شد یهو زمین هفت کشور فرمان توست دد و دیب و مردم نگهبان توست به خورشید رویان سپهدار گفت که چون این نماند نهو این داستان گرد من بشنوید چودتان دل از جان من به محض اینکه که خواب رو می بینه خودش توجه داشته که روزگارش س... سر آمده با این حال به قاعده القریب و تشبسه به کل حشیش آدم گرفتار و هر چاره ای دهست ده میزنه رای که پیش پاس میزنن قبول می کنه. بشای جهان گفت پس ارنواز که بر ما بباید گشادن راز سفه ود گشادن نهان از نهوفت همه خواب یک یک به دیشان چون این گفت نامور ماه روی که مگزا تن که مگزا تن راه رای چاره جون بلش نکنم دید نگین زمانه سر تخت تو جهان روشن از نام ور تو تو داری جهان زیر انگشتری داد و مردم و دیب و مرغ و فری زهر کشوری گرد و مهتران زه اخترشناسان و افسونگران این مهتران هم بزرگان هم منجمان و هم افسونگران که با اوالم ماورای طبیعی البته اینا افسونگران افسونگران احریمنی بودن طبعا برای اینکه اجده هام کدش دیب سخون سر, سر مهتران را بگوی، پژوهش کن و راستی باز نگاه کن که هوشت تو بردست که کیست؟ هوش شعنی مرگه قبلا ارض کردن این که در همین مجلس گفتم که هوش شعنی مرگ بگیم که کاملا روشن نگه کن که هوشت تو بردست که کیست؟ زه مردم شمار این در شمار مردم این قاتل تو ار یعنی یا اگر به معنیه یا از مختصات شامان میگه از مردم شماره یعنی در شمار مردمه کسی که جزو مردم میشمارنش یعنی آدم حسابش میکنن یا از دیو و فریه اینو از احسانگرام بپرس که مرگ تو دسته کیه این موجودی که مرگ تو دسته او امسانه یا یعنی از دیوان و فریانه. مردم شماره یعنی جز مردم حساب یه جه چیز، در گلستان سعدین میگه که یاد دارم که در دیابان کجا میرفتم و از ذات معنی چیزی با من نمونده بود یعنی هر چیزی که اسمش میشه گذاشت، زاد و راهله، چیز خوراکی، هیچ، از ذات معنی چیزی با من نمونده بود اینم همونطور، مردم شماره میگه، از در شمار مردمه یا از دیو و فریه تو دانسته شد چهاره آن تو دانسته شد چهار سازان زمان به خیره من از بد بدان به خیره یعنی بیهوده قیده شه برمنش را خوش آمد سخون شان سر به پربین رو خفکند بون از یه هم اومد میگه صبح شد چقدر سید زیبایی کرده جهان از شب تیره پر رضاق همانگه سر از گوه برزد چراق تو گفتی که بر کشور لازو بر به گسترد کرشید یا حوک زر هر آنجا که بود موبدی سخندان و بیدار دل بخردی ز کشور به نزدی که خیش آورید به گفتان جگر خسته خوابی که دید. بعدم نامی ترسن و بالاخره اصفار میکنه یکشون اجازه میخواده میگه که فضایدین اینه و وضع طراغ خلاصه و بعدم چند کم کم تا بهتون میکنه و ما فعلت میگه هم که بذاریم که پست داستانم نداریم به خلاف نرکالای که پست داستانم دارن بعض دورون زدن ما پست داستانم نداریم میگه انشالله که اون باشه بنده هم دوستان رو که خیلی اشون علاقه هستم مجددن ببینم و اگر فرصتی بود و دوست داشتن این چاهنامه رو تا قابل این هست که تا داستان زحاف و داستان فریدون و اینا رو خیلی نوته های مهم و بسیار جالب نکته های مربوط مرگون شناسی همثال اینا خیلی تونی قسمت هست چون بخش خریدون رو محلان دارم در دانشگاه درست میدم و خیلی مطال هست مدید هم دیگه حالا ببینیم میگه خدا چه بخواه بگواریم که یعنی یعنی یعنی افزار یعنی چیزی که دو خود بکشش ببریم یعنی دهنی با به تو بخونیشونم به به مردم شماً شمار ما قبلا این جزئیات رو ما برای خود شما گفتیم که چجوری شده فرد بخشی هم و استهایی